داستان سه سگ یکی بود، یکی نبود کشاورز پیری بود که یه پسر داشت و یه دختر وقتی که داشت از دنیا میرفت رفت بچه هاشو صدا کرد و بهشون گفت زمان مرگ من دیگه فرا رسیده چیزی ندارم براتون بذارم جوز تا گوسفند سعی کنیم با هم دیگه بسازین و گشنگی نکشین وقتی که مرد برادر و خواهر با همدیگه زندگی کردن پسره میرفت دنبال و دخترم میمون توی خونه و بافتنی میکرد و غذا درست میکرد یه روز که پسره با تا گوسفندش رفته بود توی جنگل مردی رو دید با تا سگ که از اونجا رد می میشدند رفت جلو شروع کرد به صحبت کردن با اون مرد سلام آقا روز بخیر مرد هم بهش جواب داد سلام پسرم چه گوسفندای قشنگی داری؟ پسرم تشکر کرد و گفت شمام هم سگای قشنگی دارین میخوای یکیشون از من بخری؟ پسره گفت قیمتش چقدره؟ مردم جواب داد اگه یک گوسفند بهم بدی منم یکی از سگای بهت میدم پسره گفت اون وقت چی بهم به میگه؟ چی باید بهت بگه؟ شما برای نگهبونی یه سگ نیاز دارین خلاصه، پسر راضی شد. یه گوسفند مرد داد و یه سگ ازش گرفت. از مرده پرسید اسم سگت چیه؟ مردن جواب داد آهنپار کن. موقع رفتن به خونه که شد، قلب پسرک تونتون میزد. چون حتما خواهرش دعواش میکرد و بهش سرکوف میزد. همینطور هم شد وقتی که برگشت خونه دختره رفت توی تحویله تا گوسنده رو بدوشه ولی به جای سه تا گوسند دو تا گسفند دید با یه سگ خلاصه خیلی از دست برادرش ناراحت شد و ازش پرسید: بگو ببینم این سگ به چه درد ما آخه؟ اگه فردا هر سه تا گوسفند با خودت نیاری من دیگه باها حرف نمیزنم. اما بعدش قانه شد و گفت برادرم راست میگه ما برای نگهداری از این گوسفندا به یه سگ احتیاج داریم. روز بعد باز پسره رفت همونجا و دوباره همون مرد رو با دوتا تا سگ دید. بعد از اینکه با هم دیگه احوال پرسی کردن مرد گفت گوسند من داره از تنهایی دق میکنه. پسرم گفت سگ منم داره از تنهای دق میکنه. خب پس اگه اینجوریه تو یه گوسفند هم بده منم یه سگ بهت میدم. پسر بیچاره گفت ای بابا خواهرم برای اینکه من دیروز یکی از گوسفندا رو با خودم نبرده بودم کلی ناراحت شد. چیکشو بکن؟ اگه یکی دیگرم بهتون بدم چیکار میکنه؟ مرد دوباره جواب داد ببین پسر جون یه سگ تنهایی اصلا به درد نمیخوره. اگه سرکده دوتا گرد پیدا بشه اون وقت باید چیکار کنی؟ پسر یه خورده به خودش فکر کرد؟ بعدم آخرش رضایت داد. دوباره یه گوسن داد و یه سگ گرفت. بعدشم از مرد پرسید: اسمش چیه؟ مردم جواب داد زنجیر پاره کن. شپ شده بود پسرک با یک گوسفند و دو تا سگ برگشت خونه خواهرش ازش پرسید هر سه تا گوسند آوردی پسر بیچاره که نمیدونست باید چی جواب بده گفت آره اما احتیاجی نیست که امروز تو بری توی طویله من خودم اونا رو میدوشم اما دختره میخواست بره ببینه و بالاخره ماجرا رو فهمید و اون شب به برادرش اصلا شام نداد که بخوره بعدشم بهش گفت فردا میری و همه یه رو با خودت میاری. اگه این کار نکنی یه بلایی سرت میارم. پسر بیچاره فردای اون روز که داشت با یکی از گوسفندا و دوتا سگاش میرفت به جنگل دوباره اون مرده رو دید توی جنگل. شروع کرد به صحبت کردن. مرد به پسر گفت این سگ من داره از تنهایی دق میکنه. پسرم گفت گوسند منم هم همین طور. دوباره مرد بهش گفت خب این که کاری نداره گوسندتو بده به منو این سگو بگیر. پسره گفت نه اصلا همچین چیزی امکان نداره. حالا که دو تا سگ داری چرا سومی رو نمیخوای؟ حداقل سه تا سگ گیرت میاد یکی بهتر از اون یکی. پسرک مجبور شد که دوباره این کارو انجام بده. همون یه دونه گوسندش هم داد به مرده و سگه رو ازش گرفت. بعدش هم بهش گفت اسم سگه چیه؟ مرد بهش جواب داد دیوار خراب کن. آهن پاره کن، زنجیر پاره کن، دیوار خراب کن. دور پسر جمع شدن. وقتی که شف شد، دیگه پسر جرعت نداشت برگرده خونه پیش خواهرش. سرگذاش به بیابون. با سرکاش توی جنگل و دره شروع کردن به راه رفتن. رفتن و رفتن. بارون تندی شروع کرده بود به باریدن. هوا تاریک شده بود. پسر نمی دونست باید کجا بره. رسیده بود به ته جنگل. ولی یه دفعه یه قصر زیبای نورانی از دور دید که دورش یه دیوار بلند بود. پسر در زد. اما کسی در رو براش باز نکرد. با خودش گفت الان حتما دیوار خراب کن میتونه به هم کمک کنه. هنوز حرفش تموم نشده بود که دیوار خراب کن با پنجاهاش همه ی دیوارا رو خراب کرد. پسره همراه با سگاش رفتن داخل. اما جلوتر یه در آهنی محکم بود. این هم از آهن پارکون کمک گرفت. تا صداش کرد آهم با دو تا گاز در ورودی رو تکه تکه کرد. اما قصر یه در دیگه هم داشت که با زنجیرای کلوف بسته شده بود. پسره گفت زنجیر پارکون و سگه با یک گاز در براش باز کرد. سگا همراه پسرک از پله بالا رفتن. توی قصر هیچ کس نبود. اما توی یکی از اتاقا بخاری دیواری روشن بود و یه میز با خوراکیای های فراوون آماده آماده بود. پسرک شروع کرد به خوردن. حتی برای سگاش هم غذا بود. بعد از خوردن غذا چشمش به تختی افتاد که گوشه اتاق بود. رفت و رو تخت دراز کشید و به خواب فرو رفت. صبح که از جاش بلند شد یه تفنگ آماده یه اسب حاضر به یراق برای شکار براش محیا شده بود تصمیم گرفت سوار اسبه بشه و تفنگش رو برداره و به شکار بره وقتی هم که از شکار برگشت دوباره یه میز غذای آماده براش چیده شده بود همه چی تر و تمیز شده بود روزها همینطور میگذشت پسرک اصلا کسی رو اونجا نمیدید. هرچی که آرزو میکرد براش آماده بود. خلاصه، مثل عربابا زندگی میکرد. یه روز به فکر خواهرش افتاد. با خودش گفت، معلوم نیست الان با چه فلاکتی داره زندگی میکنه. دبن براش خیلی تنگ شده. بهتر اونم بیارم پیش خودم تو با هم زندگی کنی. حالا که اینقدر راحت دارم زندگی می کنم اگه برم دنبالشو بیارمش پیش خودم دیگه برای خونه نبردن ستا گوزفند به هم سرکوفت نمی زنه فردای اون روز لباس اربابی پوشید سوار اسبش شد و همراه سگاش رفت دنبال خواهرش. خواهرش تو چارچوب در نشسته بود و داشت بافتنی می بافت وقتی که اونو دید جلو اومد و بهش گفت شما کی هستی؟ اما وقتی دید که همون برادرشه با همون تا سک که به جایی ستا گوسفند گرفته بود دوباره شروع کرد به بد قلقی کردن برادرش هم بهش گفت ای بابا چقدر سرکوفت میزنی به من من دیگه زندگی اربابی دارم حالا دیگه احتیاجی به اون گوزفندو ندارم اومدم تو را هم با خودم ببرم خلاصه خوهران رو راضی کرد که باهاش بیاد سوار اسب شدن و اونم مثل خانم عرباب ها اومد به قصد تا اونجا زندگی کنه. هرچی که هوس میکرد براش آماده میکردن. اما تحمل رو نداشت. هر دفعه که برادرش برمیگشت به خونه شروع میکرد به غور زدن. یه روز که برادره با ستا سگش رفته بود شکار خواهره رفت توی باغ و ته باغ یه پرتقال قشنگ دید. رفت که اونو بچینه. همینطور که داشت از شاخه پرتقال میچید، یه اژدها پرید بیرون و به طرفش حمله کرد. دخترش شروع کرد به گریه و زاری کردن، بعدش هم بهش گفت که اول برادرش اومده توی این با و اون باید اول برادره رو بخوره. اژدها گفت که نمیتونه برادرش رو بخوره چون همیشه سه تا سگ داره که مراقبش هستن. دختره از اژدها خواست که بهش بگه چیکار باید بکنه. که جون سالم به در ببره اجدها بهش گفت اگه می‌خوای من برادرتو بخورم باید اون سه تا و اون طرف در ورودی اون طرف دیوار باغ با زنجیر آهنی ببندی دخترم قول داد و به خاطر همین اجدها اون روز اونو ولش کرد وقتی برادر برگشت خونه دختر شروع کرد به قرض زدن که دیگه موقع غذا خوردن طاقت نداره این سه سگو ببینه چون خیلی بوی بدی میداد. برادره برای رازی کردن خواهرش خیلی صبر و حوصله به خرج میداد. رفت و سگا رو همون که خواهرش بهش گفته بود یه گوشه ببنده. بعدشم هم بهش گفت که بره و اون درخت پرتقال و پیدا کنه و پرتقالاشو بچینه. پسر بیچاره به حرف خواهرش گوش کرد و رفت ته باغ تا پرتقال ها رو بچینه. همینطور که شروع کرده بود به پرتقال چیدن یه اجده پرید بیرون. پسره که از خیانت خواهرش با خبر شده بود فریاد کشید. آهم آه پاره کن، زنجیر پاره کن، دیوار خراب کن، کمک هم کنید. تو یه چشم به هم زدن میله های در ورودی تکه تکه شدن. دیوارها با ضربه هایی که دیوار خراب کن با پنجه هاش می خراب شدن و خلاصه هر سه تا سگ به طرف اژدها حمله کردن و حسابش رو رسیدن برادر صحیح و سالم پیش خواهرش برگشت بعدم به خواهرش گفت این دوستم داری؟ میخواستی اجده ها رو بخوره؟ دیگه نمیخوام تو رو ببینم بعدش هم سوار اسبش شد و با تا سگ با وفای خودش رفت تا دور دنیا رو بگرده. رفت و رفت تا رسید به پادشاهی که فقط یه دختر داشت. یه اجده بود که میبایست اونو میخورد. پسر رفت پیش پادشاهو بهش گفت که میخواد با دخترش عروسی کنه. اما پادشاه بهش گفت نمیتونم دخترمو بهت بدم. چون قرار یه حیوان وحشتناک اونو بخوره اما اگه تو بتونی آزادش کنی و اونو شکست بدی قول میدم که اجازه بدم دخترم بهاد ازدواج کنه پسر هم این شرط پادشاه رو قبول کرد. ولی پادشاه گفت اصلا فکرش نکنید. من قول میدم که این کارو انجام بدم. و بعد هم پسر با سکاش رفت دنبال اجدها تا اونو از بین ببره به کمک سگاش تونست اونو از بین ببره با شادی و خوشحالی و پیروزی پیش پادشاه برگشت پادشاه هم همونطور که قول داده بود دخترش رو به نامزدی اون دراورد روز عروسی رسید پسر که دیگه همه اتفاقات گذشته رو فراموش کرده بود تصمیم گرفت خواهرش هم دعوت کنه تا توی عروسی شرکت کنه. بعد از مراسم عروسی، خواهره که همیشه علیه برادرش دندون تیز کرده بود گفت امشب میخوام من وقت خواب برادرمو آماده کنم. همه فکر میکردن خواهر خوب یعنی همین. اما اون خواهر بد توی جای داماد یه اره تیز گذاشت. وقتی که داماد رفت تو تخت خواب تا به خوابه، توی تنش فرو رفت و داماد از دنیا رفت. داماد رو گریه کنان بردم به کلیسا. ستا سگ با هم دنبال تابودش را میرفتن وقتی که همه رفتن، ستا سگ با وفای مرد کنارش موندن. یکی سمت راست، یکی سمت چپ و یکی هم بالای سرش. بعدش هم سگا شروع کردن به حرف زدن. به همدیگه میگفتن: "باید به اربابمون کمک کنیم تا حالش خوب بشه." یکی از سگا رفت و یه مرهم آورد و شروع کردن زخمهای مرد رو مرهم زدن. بعد از این کار دوباره پسر جوون و صحیح و سالم شد. ماجرا به گوش پادشاهام رسید. پادشاه دستور داد بگردن و اونی که تو تخت خواب دامادش اثر گذاشته بود و پیدا کنن. و بالاخره همه هم متوجه شدن که کار خواهره بوده. پادشاهم دستور داد که خواهره رو بگیرن و به سزای عملش برسونن. حالا دیگه پسر جوون کنار زنش خیلی راضی بود. پادشاهم که دیگه خسته و پیر شده بود، از سلطنت کنار رفت و دامادش و پادشاه مملکت. اون فقط از یه چیز ناراحت بود. اونم اینکه که ستا سگش دیگه قهیف شده بودن. همه جای مملکت رو گشت اما نتونستون رو پیدا کنه. خیلی ناراحت بود اما چارهای جز تسلیم شدن نداشت. یه سفیری اومد پیشش و بهش گفت که سه تا کشتی توی ساحل لنگر انداختند و با خودشون سه تا شخصیت مهم دارن. اون آدما میخوان که با شما دیدار کنن و باتون با تجدید پیمان کنن. پادشاه جوان لبخند زد و گفت من که همیشه یک کشاورز بودم. هیچ وقت هم هیچ شخصیت مهمی منو نمیشناخت. این آدما کی میتونن باشن که میخوان منو ببینن ببینند و با من پیمان ببندن؟ تصمیم گرفت که به ساحل بره و اون شخصیت های مهم رو از نزدیک ببینه. دو تا پادشاه و یه خان توی ساحل منتظر بودن که استقبال گرمی از پادشاه بکنن. تا همدیگر رو دیدن، اون سه نفر به پادشاه گفتن ما رو به جا نمیاری؟ پادشاهم گفت حتما دارید اشتباه میکنید اون سه نفر جواب دادن هیچ فکرش رو نمیکردیم که تو سگای با وفای خودتو فراموش کرده باشی پادشاه جوان با صدای بلند گفت چی؟ یعنی شما آهم پاره کن، زنجیر پاره کن، دیوار خراب کن هستید؟ چرا اینجوری شدین؟ اونا هم جواب دادن یه جادوگر ما رو به شکل سگ در آورده بود و ما نمیتونستیم به شکل الانمون برگردیم مگه اینکه به یک کشاورز کمک میکردیم تا به تاج و تخت برسه. ما خیلی از تو ممنونیم که این اجازه را به ما دادی که همراهت باشیم. ما از این به بعد میتونیم دوستای خوی برای همدیگه باشیم. یادت باشه که دوتا تا پادشاه و یه خان تو هر شرایطی آمادن که بهت کمک کنن. پادشاه جوون خیلی خوشحال شده بود که بعد از مدت‌ها تونسته بود دوستای باوفای خودش رو پیدا کنه. چند روز جشن‌های باشکوهی تو شهر گرفتند. ولی بالاخره باید از همدیگه جدا می‌شدن. روز حرکت، بعد از اینکه کلی آرزوهای قشنگ برای همدیگه داشتن، هر کدوم به سرزمین خودشون برگشتند و با شادی و خوشحالی به زندگی خودشون ادامه دادن.